برلین شرقی، آلمان شرقی، 27 جانویه ۱۹۴ سب، در یک اتاق تنگ و مربع شکل کنار دیوار ایستاده بود. تنگی اتاق به شدت آزاردهنده بود. آرزو کرد بتواند لحظه‌ای به دیوار تکیه دهد. اما بازجوهایی که روبرویش ایستاده بودند، به او گفتند باید همانجا سرپا بیستد و حق ندارد به دیوار نزدیک شود. حساب روزها از دستش در رفته بود، و نمیدونست چه مدتی را در این مکان گذرانده است. در واقع او اصلا نسبت به چیزی جز دردهایش هوشیاری نداشت. حتی دردهایش هم نمی توانستند بگویند کدامشان شدیدتر و تحملش سختتر است. دردی که در صورتش می پیچید. که چون پاسخ مورد انتظار بازجوها را بر زبان نمی آورد <تصف> پی در پی بر آن ضربه میزدند یا درد انگشتان دست راستش که شکسته و کاملا خشک و به شدت متورم شده بود و به نظر می رسید دیگر قابل درمان نیست. کبودی انگشتانش هر لحظه بیشتر می شد به طوری که یکی از بازجوها به کنایه به آن دیگری می گفت این اتفاق برابر با پایان نوازندگی اوست و او دیگر هرگز قادر به نواختن ساکسیفون نخواهد بود. یا شاید درد ناشی از گروسنگی شدیدش آنقدر کم به او غذا می دادند. که دائم دل درد داشت اما ناگهان به فکر نیاز شدیدش به خواب افتاد و خواب در رأس لیست دردهایش قرار گرفت خواب او سرگرمی جالبی برای بازجوها شده بود و آنها کمکش می کردند تا بر بیخوابی غلبه کند چیزی نگذشت که دردمندانه به موضوع دیگری اندیشید از خودش و از آن, آن همه خودخواهیش بدش آمد چرا فکر دردهای جسمی آنقدر باید بر او چیره میشد که آن مسئله مهم را از یاد ببرد چیزی که باید بیشتر از هر چیز دیگری نگرانش باشد یعنی سرنوشت هیلدا و دخترشان گریتا دلش میخواست از دوری آنها گریه کند کاری که در روزهای اول زندانی شدنش میتوانست انجام دهد اما بازجوها دیگر به او اجازه گریه هم نمیدادند. او را در چنان گردابی از شکنجه انداخته بودند که دیگر حتی توان فکر کردن به عزیزانش را در خود نمی دید. بازجوها هر دفعه با شکنجه های بیشتری نزدش می آمدند. آنها فقط زمانی از شکنجه دادنش سیر می شدند که او تسلیم شود. وقتی یکی از بازجوها از اتاق خارج شد، دیگری با صدای مملو از آرامش گفت سپ، من می کمکت کنم و از اینجا به ببرمت بیرون. خواهش می کنم. بهت قول میدم. هر کاری بخوای انجام بدم. خب، تنها کاری که باید بکنی اینه که اسم گروه ها و افرادی که علیه نظام ما کار میکنند رو بگی. همچنین گروهی وجود نداره. قسم میخورم من کشورم رو دوست دارم و طرفدار این نظام هستم. هیچ گروهی وجود نداره. بازم که داری لجبازی میکنی. اگه اینجوری ادامه بدی من نمیتونم بهت کمک کنم. سپ، وضعف شدید ادامه داد من نمیدونم شما از چی حرف میزنین. اگه کسی رو میشناختم که داره بر کشورم کار میکنه خودم اولین نفری بودم که اون رو به شما معرفی میکرد تو همیشه از دولت انتقاد میکنی و همه یه کارهاش رو به تمسخر میگیری بگو کی باهاته چه کسانی این نظرات تو رو قبول دارن و مثل تو علیه ما حرف میزنن و فعالیت میکنن در همان لحظه بازجوی قبلی وارد اتاق شد و با عصبانیت گفت بهت که گفتم حرف زدن با اون فایده ای نداره همین الان به زندان می فرستمش یه نوشیدنی حالش رو جامیاره و به جرمش اعتراف میکنه فردا داروی جدید رو روی اون امتحان میکنیم او را از آن اتاق تنگ به زندانی تنگ تر بردن زندان بسیار تاریک بود انقدر تنگ بود که دیوارهایش گویی داشت به هم میخورد. وقتی او را به داخل زندان انداختند به خود پیچید و روی زمین افتاد. چشمانش را بست. هنوز همسر و دخترش را ندیده بود. میل شدیدی به خواب داشت. فقط میخواست پلکایش را روی هم بگذارد و به خواب برایش مثل یک آرزو شده بود. میدانست نگهبانان نخواهند گذاشت خواب طولانی و راحتی داشته باشد و او ناچار بود تسلیم شود هنوز به خواب نرفته بود که ناگهان زندان با نور شدیدی روشن شد. طوری که انگار در مرکز تابش نور خورشید قرار دارد. سپس از پشت دیوار صدای ترسناکی بلند شد که می گفت چه تسب؟ فقط کافیه اسم همدستانت رو بگی و بعد میتونی از اینجا بری بیرون. کجای این کار سخته؟ وایتسمن با دقت به مردی که مقابل میزش نشسته بود گوش می داد. مطمئنی که خودشه. همه مدارک نشون میده که خودشه لیلیان اشمیت. جای برای اشتباه کردن وجود نداره وایسمن. بعد از جریان آیشمن لازمه که دقت کنیم مدارکمون کاملا بینقص باشن و هیچ شک و تردیدی در اون وجود نداشته باشه. ما این فرصت تکرار نشدنی رو داریم که این مجرمان رو به دست عدالت بسپاریم. اما اگه یکی از اونها از زیر محاکمه در بره اون وقت موضوع نتیجه عکس میده و ما در این موج موج خوبی که ایجاد کردیم بازنده خواهیم شد. من همیشه در جمع‌آوری اطلاعات دقیق بودم، مدارک زیادی هم جمع کردم که اون رو حتماً گیر میندازه. اگه اون واقعاً همون لیلیان باشه، یکی از نزدیکترین دستیارهای آیشمن بوده. تکرار می‌کنم، قبل از هر اقدامی اول باید کاملاً مطمئن بشی. میترسم احساس کنه داریم بهش نزدیک میشیم و مثل خیلی های دیگه مخفی بشه همونطور که ما در بین اونها دوستانی داریم که اطلاعاتشون رو به ما میرسونن اونها هم کسانی رو دارن که بهشون هشدار میدن یا از برنامه های ما بهشون خبر میدن اگر در کارهای ما ذره شک و تردید وجود داشته باشه همون دوستان اونها نت... نهایت تلاششون رو میکنن تا همه زحمت های ما بشه. الان فقط مهم اینه که یک متهم نازی جدید شکار کنیم و به دست محاکمه بسپاریم. هر اتفاقی که بعد از اعدام آیشمن میافته باید به نفع ما باشه هر دو مرد لحظه سکوت کردند سپس مهمان پیشنهادی را مطرح کرد از اصول یک شکار خوب اینه که اول تومت رو امتحان کنی باید اونو در موقعیتی قرار بدی که بترسه اون تلاش میکنه هیچ اثری از خودش به جا نذاره اما وقتی ترسیده باشه کارهایی میکنه که اون مدارکی که تو لازم داری بهت میده اون وقتی که مطمئن میشی خودشه وقتی مدیرم از ناپدید شدن هیلدا و نیازم به پیگیری هر روزه موضوع و رفتنم به دفتر ارتباطات خارجی مطلع شد با مرخصی های ساعتی من مخالفتی نمی کرد. آن مسئولی که برای قضیه ناپدید شدن هیلدا به او مراجعه میکردم در کارش سرعت نداشت من معمولا دو یا سه بار در هفته نزدش میرفتم روز دوشنبه به من گفته بود تا بعد از تعطیلات پایان هفته منتظر خبر جدیدی نباشم احساس میکردم قصد دارد مرا جلوی در دفترش منتظر نگه دارد شاید گمان میکرد اهمال و بیتوجهیش باعث می شود انگیزه برای پیگیری ها و یافتن هیلدا را از دست بدهم. وقتی وارد دفترش شدم دیدم برخلاف همیشه شاد و خندان است و همین بسیار متعجبم کرد. خبرهای خوبی برات دارم لیلیان. این اواخر متوجه شدیم که هیلدا به دست اشتازی زندانی شده. اشتازی؟ بله پلیس مخفی آلمان شرقی. این خبر خوبیه چیزی که من درباره اونها شنیدم اینه که خیلی ترسناک هستن این که به ما اطلاع دادن هیلدا پیش اوناست یعنی میخوان مذاکره کنن مذاکره درباره چی مذاکره کنن هیلدا چیزی که اونا میخوان رو نداره هیلدا واقعا آدم سلطه‌طلبیه مذاکره در مورد مبلغی که در قبال آزادیش باید پرداخت بشه پول یعنی هیلدا بوده شده کمی منومن کرد و بالاخره گفت خیلی از شهروندان ما مجبور شدن در آلمان شرقی بمونن و اونها می که ما حاضریم برای آزادی شهروندان خودمون پول پرداخت کنیم. البته در مورد خواهرت و برگردوندن اون شرایط یک کمی متفاوته. الان نکته مهم اینه که اونها اعتراف کردن هیلدارو دستگیر کردن. پس در مقابل درخواست آزادی و برگردوندنش، مبلغی رو پیشنهاد میدن فکر کنم زم... کمی به زمان نیاز داریم تا ب... بالاخره بتونیم هیلدا رو پیش خودمون به آلمان غربی بیاریم شوهر و دخترش چطور؟ در مورد اون دوتا چیزی نگفتن اما من مطمئنم میتونیم همشون رو با هم بیاریم من پول زیادی ندارم چقدر میخوان؟ دولت ما مبلغ مورد نظر برای آزادی اونها رو پرداخت میکنه. نگران این موضوع نباش. الان فقط مهم اینه که هیلدا و خانوادهش سالم برگردند این چیزیه که ما الان روش تمرکز میکنیم. صحبت های امروزم با آن کارمند آرامشی را که در طی چند هفته گذشته از دست داده بودم به من باز وقتی به خانه برگشتم دلم میخواست به خودم جایزه بدهم. با یک شب خوب را بگذرانم در مقابل آن سختی هایی که در این یک ماه بر من گذشته بود، این کمترین کاری بود که می توانستم انجام دهم. ده برای سه نفر غذا آماده کردم. انگار هیلدا و شوهرش در راه هستند و نزدیک است برسند. با دقت یک قطعه گوشت بریدم و یک لیوان هم آبجوی سرخ محبوبم را برای خودم ریختم. بعد از غذا خواستم بخوابم، یک خواب راحت که هیچ نگرانی و ترسی نتواند بیدارم کند. همون نگرانی هایی که به خاطر تصوراتم از رنج و عذاب هیلدا به ذهنم هجوم می آورد. همین که خواستم به طرف رختخوابم بروم احساس کردم چند صدای چند ضربه آهسته به در آپارتمان را شنیدم. از جا بلند شدم، نمی آیا امکان داشت این دست های خواهرم باشد که در میزند؟ آیا آن کارمن میخواست سوپرایزم کند؟ با عجله در را باز کردم اما کسی پشت در نبود فقط، یک واکت سفید به چشمم خورد که جلوی پایم روی زمین افتاده بود. بازش کردم. یک برگه تا تاشاده در آن بود. با ماشین تایپی روی آن نوشته بودند. آیشمن سر افعی بود و اول شکارش کردیم. ما شما مجرمان را رهانه می کنیم که آزادانه زندگی کنید و از زندگی لذت ببرید. این افعی را به طور کامل شکار خواهیم کرد. حتی کوچکترین جزء آن را و از این کار خسته خ به امید دیدار لیلیان اشمید بله ما میدانیم تو کی هستی؟